فصل شش بخش ششم کوفه و شام ورود به کوفه وقتی رسید غافله در شهر کوفیان آمد تمام شهر به دیدار این شهان وقتی شنید مسلم گچکار میرسند آمد سوی کناسه و با ذکر بر زبان ای وای من چه کرده عدو با گل رسول ای وای من ز اذیت و آزار ظالمان در انتظار غافلی سبر گشتهاند تا که رسید حیعت زینب و کودکان شد خون به قلب شیه دمی که دید زین العباد با قل جامع دران میان شرمنده امز یوسف زهراز گفتنش امشب پذیر عذر مرا صاحب و زمان گویا رسیده خارجی خاک بر سرم لعنت بر آن شهان ستم لعن سویشان زینب رسید با غم بسیار و بعد از او آمد سران به روی نی و وای از آن زمان زینب صدا زده ای سر برنی حسین من آیا توی به یکین کین این دمین چنان ای ماه من چگونه دو روزش شدی هلال ای ماه من بمیرم از آن جور دشمنان پور علی به نیزهٔ اعدا چه میکنی بر دامنم بیا که شدی خسته از سنان ای وای من ز سنگ جفا و از آن تنور لعنت به خولی و عمر سعد و عاملان. من میزنم به چوبه محمل سرم حسین من میشوم به شام بلا با سرت روان من شاهدی به تشت طلا میشوم حسین من میروم به بزم یزید ای عزیز جان من شاهد شهادت دردانه می شوم در جان من نمانده دگر بعد از این توان در جان من نمانده دگر بعد از این توان مسائب کوفه و شام می کشد آن بی هیا خنجر به هنجر یا حسین زینبت زین غم بریزد خاک بر سر یا حسین میزند آتش به خیمه دشمنت از کینش خواهرت آنجا بگوید وای مادر یا حسین در میان شهر کوف رأس تو بر روی نی پیکرت در کربلا مانده است بی سر یا حسین مجلس ابن زیاد و چوب بر دندان تو ماجرای شهر شام از کوف بدتر یا حسین آتش از بالای بام و نیزه و سنگ از زمین میزند این ماجرا بر قلب ماذر یا حسیل شام و مجلس یزید لعنت الله علیه از زبان حضرت زینب سلام الله علیه میزند باخی زرانش لب و دندان تو کاش این غم را نمی دیدند این تفلان تو می خورد هردم شراب و ریزد از کین بین تشت آتشی بر قلب من زد خواندن قرآن تو رأس تو از کوفه برنی شاهد غم تا به شام روی زیبایت هلال و سوی ما چشمان تو بین ره از روی نی افتاد رأست بر زمین زین مصیبت سوخت زینب خواهرت قربان تو چون پس از بزم یزیدن در خراب دخترت گریه کردن قدر گفتم شد پدر مهمان تو، مادرت شد روزخان تا خاند از کرب و بلا، چشم عالم زن جسارت ها بشد گریان تو